اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي حَدَانَا و ما کننا لنحتدی لولا انحدان الله ستایش الله را که ما را به دین را هدایت نمود و اگر الله ما را هدایت نمیکرد ما خود هدایت نمیافتیم با قسمت اول از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموع گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن و کتب منقبل میپردازد در این راستا برنامه اول را به مقوله امامت و محدبیت تشیع اختصاص دادم سوال آیا دکترین امامت و محدبیت تشیع حجتیت شرعی و الهی دارد یا خیر؟ قبل از پرداختن به موضوع امامت و مهدویت تشیع به استهزار دوستان گرامی میرسونم موثق ترین ادله و مرجعیت اسلام قرآن است و ارکان ایمان در شریعت عالی اسلام و در متن مقدس قرآن مبین جاری و ساری شده سوره نساء آیه 136 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ترجمه آیه اي ای كسان که ایمان آورده اید به الله و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرستاد و کتاب هایی که قبلا نازل کرده بگرید و هرکس به الله و ملائک او و کتاب ها و پیامبرانش و روز قیامت که زد در حقیقت دوچار گمراهی دور درازی شده است همان گونه که ملاحظه میکنین در سوره نسا آیه 136 حوزه و ارکان ایمان از سوی حق تالا دقیقا ترسیم شده ایمان به الله، ایمان به رسولان الهی، ایمان به قرآن و کتب من قبل ایمان به ملائک، ایمان به معاد. و در این راستا، هر گونه دخل و تصرف در اصول و مبانی ایمان، بدعت و دروغ بستن به الله تعالی می باشد. حال، با بررسی موضوعی و تطبیقی آیات قرآن کریم، خواهید دید که اساسن امامت و مهدویت تشیع در شریعت قرآن مبین جایگاه و محلی از اراب نداشته و هیچ شکی نیست که پیروان و مقلدان اهل تشیع تحت تأثیر اوهام خرافه، خیال پردازی و باقییت گریزی امامان خود را همه کاری دستگاه الهی دانسته یا نیم خدایانی تصور کرده که حالی از نور به گرد سرهای آنان است و بیماران را شفا می دهند و حوائج را برآورده می سازند و از هرچه در دلحاس آگاهی دارند تا جایی که امروز بیشتر اهل تشیع جز زیارت و تواف قبور ایشان و نیز ابراز احساسات و ذکر مسائب و گریستن درباری امامان خودساخته خیش و شیرخانی، گذافه گویی، قلوب و مداحی کاری از پیش نمیبرند و لذا بر همه موهدان لازم است با تعاون یکدیگر نهضت توحیدی گسترده را برای مبارزه با جهل، تقلید هوایی نفسانی، دنیاگرایی، تعصب، تکبر و خرافی گرایی در همه مظاهرش آغاز نمایند تا ان الله با تمسک و اعتصام به قرآن مبین مسیر هدایت و نور الهی برامون مشخص بشه یکی از این آیات که توسط طیف روحانیت هر روز در منابر و رسانه های گروهی تصویری به نمایش گذارده میشه سوره مائده آیه 3 میباشد حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیری و ما لغیر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلان ذلكم فسق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون الیوم اکملت لكم دينكم و اتممت نعمتی و لكم الاسلام دينا فمن اضطر و فی مخمصت غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم مذهبی با متره نمودن بخشی از آیه سوری مائده و کتمان قبل و بعد اون و نیز شأن نزو تراشی مدعیه که این آیه در محلی به نام قدیر بر محمد رسول الله وحش شده که محمد نبی بعد از سو علی وسیع و جانشینت خواهد بود و علی حجت اللهه حالا بریم آیه رو به طور دقیق و موشکافانه بررسی کنیم که واقعا این آیه پیرامون موضوعیت قدیر و امامت علی است یا به اکمل رسیدن طعام و نعمت رزق طیب که با تلاوت و ترجمه کل این آیه سوری ماعدای براتون این مهم دقیقا مشخص میشه که این جریان شگونه از جهل و ناآگاهی مردم کمال استفاده رو میبره و بخش کثیری از مردم را از سبیل الله سبحان دور چرا که از قبل امامت و مهدویت خود ساخته میخواد برای ولایت مطلقی فقی مشروعیت و اعتبار دینی تراشیده و در قیبت امام مورد ادعای خیش بگه ولایت فقی همان ولایت رسول الله هست اما ترجمه سوری مائده آیه سه حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت و خوک و آنچه نام غیر الله بر آن منتسب شود و حیوان خفه شده و آنچه با سنگ زده و پرتاب شده و شاخ زده باشد و آنچه را خورده باشند درندگان مگر آنچه را که پاک کنید ذبح کنید و آنچه نزد بوتان کشه شود و اینکه تقسیم کنید باطیرها این است نافرمانید. امروز معیوز شدند آنکه کف کفت از دین شما پس نترسید از ایشان و از من بترسید امروز به انجام رسانیدم برای شما دین شما را و پرنمودم بر شما نعمتم را و پسندیدم برای شما اسلام را به عنوان دینی پس آن کس که ناچان شود در گرسنگی بدون گرایشی به سوی گناهی همانا الله آمرزند و مهربان است در صورتی که این آیه و آیات بعدش یعنی سوره مائده آیات چهار و پنج مورد توجه عزیزان قرار بگیره خواهید دید الله تعالی در شریعت قرآن مبین به موضوعیت رزق طیب و نیز حلال بودن تعام اهل کتاب رهنمود ویژهی صادر کرده چرا که در دین اسلام یک انسان موهد بایستی به تعامی که هر روز میخوره تناول میکنه دقت کافی را بکنه که حلال یا حرام فلینظر الانسان الی تعامه سوری عبس آیی 24 پس انسان باید به خوراک خود بنگرد. دومین آیه‌ای که براتون متذکر میشم سوره مائده آی 55 است. انما الله ورسوله وهم روحانیت شیعه مدعی که این آیه در مورد علی ابن ابی طالب نازل شده. و در این جریان ایشون در حین سلات خودش خودشو به فقیرین میبخشه سخن میگه و آیی 55 سوری ماده رو اینگونه ترجمه و تفسیر میکنه مؤمنانی که سلات به پا میدارند و در حال رکو زکات میدهند در حالی که با ترجمه درست و تحت این آیه و نگاه اجمالی به آیات 51 الی چهار سوره مائده خواهید دید که الله تعالی به موحدان راسین این گونه رهنمود و خط مش میده یهود و نصارا را به عنوان یار و پوشی خود اتخاذ نکنند و در سوره مائده آیه 55 تأکید میکنه که یار و پشتیبان حقیقی شما الله رسول و مؤمنان هستند و ولا غیر و اما ترجمهٔ صوره ماعد آیی پنجاه پنج جز این نیست که ولی یار پشتیبان شما الله هست و رسولش و کسانی که ایمان آوردند کسانی که بر پا میدارند صلات را و میدهند زکات را و ایشان رکوعگذار هستند حالا یکی دیگه از آیات قرآن مجید را که توسط روحانیت تشیع در جهت اثبات دوازده امامت میشه را توسط عزیزان مورد بررسی قرار بدهیم سوره مائده آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل ایلیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصم من الناس ان الله لا یهدین قوم الكافرین ترجمه آیه ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسنده ای. و الله تو را از گزم مردم نگاه میدارد. آری الله گروه کافران را هدایت نمی کند. از دوستان و شنوندگان و محترم درخواست میکنم جهت روشن شدن این موضوع آیات 64 الی 68 سوره مائده را با دقت بخونند. خواهید دید که الله تعالی در بطن این آیات به محمد نبی کوسد و رهنمود میده آیات قرآن را به مردم انتقال بده و اناد به حسادت قوم یهود با تو عاملی نشه تا در ابلاغ وحی الهی کوتاهی بکنی یعنی محمد قرآن را بدون مماشات و ترس از قوم یهود به کل مردم برسون مجددا یکی دیگر از آیات قرآن مبین که توسط روحانیت شیعه با عنوان اثبات امامت مطرح میشه رو براتون بازگو میکنم سوره نسا آیه پنجان یا ایوها آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شيء فردوه إلى الله و الرسول این کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن بخشی از آیه پنجانوه سوری نسا از سوی این جریان بازگو میشه یا ایوحالذین آمنو اتیع الله و اتیع رسول و اول العمر من کن بعدش زیر عبارت و اول العمر من کن و مدعیه که اولو الامر امامان مأسومند که تبعیت از اونا به مانند پیروی از الله و رسوله از شنوندگان عزیز میخوام برای درک درست پیام و رحنمود این آیه کل سوری نسا آیی رو بخونن حال ترجمه کل آیه ای کسان که ایمان آوردید الله را اطاعت کنید و پیامبر و قلل اند خود را نیز اطاعت کنید پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید آن را به الله و رسول عرضه بدارید این بهتر به نیک فرجام تر است عبارت قرآنی فا این تنازعتم فیشه این پس اگر تنازع مهاجر ستیزه اختلاف در امری کردید را نگاه کنید. همان گونه که واقفید روحانیت شیعه مدعیه که اولا دوازه امام حجت و منصوب شده از سوی الله هند و دن ثانی هم حسن حال بنده میخوام از این آقایان بپرسم با امام معصوم که حجت و منصوب شده از سوی الله میشه محاجه و ستیزه در امور دین و عقایت توحیدی کرد؟ قطعا میگن هرگز پس مهاجر با چه کسانی در این آیه مطرح گردیده؟ اگر این تنازع بین خود مسلمینه چرا این آیه در ادامه متذکر میشه؟ فردوه ایر الله و رسول پس بازگردانی به سوی الله و رسول و دوستان عزیز ملاحظه میکنین در حوزه بازگشت تبعیت از اول الامر حس میشه و بازگشت معطوب به الله به عنوان حایی مطلق و رسولش که فقط نقش پیام رسانی کلام الله را داره باز میگرده. پس با این وصب به نظر شما در این آیه اصل دکترین امامت و معصومیت تشیع زیر سؤال نمیره؟ در این راستا آیه دیگه که توسط روحانیت تشیع به عنوان آیات تنزیلی از سوی الله تعالی پیرامون اثبات محدبیت مطرح و مصادره میشه رو خدمتتون arz میکنم سوره نور آیه 55 الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات نا يستخلفنهم في الارض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا ان ره دينهم الذي ضلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فهؤلاء كفارون ترجمه ايه الله بكثاني از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد همان که کسانی که پیش از آنان بودند جانشین قرار داد و آن دینی را که بر ایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هرکس بعد از آن به کف گراید آنانند که نافرمانند سوره قصص آیه پنج قرآن کریم ونرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ورثين ترجمه آیه و خاصیم بر کسانی که در آن سرزمین فروده است شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم پیام و وعده الهی در آیات سوره نور پنجا پنج و سوره قصص پنج نشانگری اینه که زنجیره ایمانداران و پیروان خط الله به واسطه عبودیت خالصانی حق هرگز گسسته و منقطع نمیشه و کماکان شاهد و نظارگر تداوم و جایگزینی نهزتهای توحیدی در طول تاریخ بشری خواهیم بود و در نقطه مقابل سرنوشت محدوم مستکبران ظالمان و فاسقان چیزی نیست جز قهقرا و نابودی همیشگی حال با استناد و استشهاد به قرآن مبین با عنوان تنها معخذ علوم شرعیه و دینیه، امام منصوب شده از سوی الله رب العالمین چه حجت الله رو براتون معرفی میکنم براسی در دیدگاه قرآن مجید چه کسی امام کل مسلمین است سوره بقره آیه 124 قرآن کریم و اید ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعنک للناس اماما قَالَ <تصفيق> وَمِن <تصفيق> ترجمه آیه چون ابراهیم را پروردگارش با کلاماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید الله به او فرمود من تو را امام مردم قرار دادم ابراهیم پرسید از دودمانم چطور فرمود پیمان من به بیداد نمی نمیرسد. آری ابراهیم نبی امام منصوب شد از سوی الله، حجت الله، همون که ما را مسلمان نامید سوری حج آیی 78 قرآن کریم و فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعما المولى ونعما النصير ترجمه ايه در راه الله چنين که حق جهاد در راه اوس جهاد كنيد اوس که شما را برای خود برگزيده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 چه نیکو مولای و چه نیکو یاوری خدمت شنوندگان عزیز ارز میکنم با انایت به کلام الله در قرآن مبین اولا الله تعالی از روی خاری و زبونی برای خودش ولی اتخاذ نمیکنه و ثانیا بعد از رسولان الهی حجتیت شرعی به الهی تعطیل و تمام میشه سوره اسرا آیه 111ه اول قرآن کریم و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ترجمه آیه بگو سپاس الله را که بر نگرف فرزندی و نیستش شریکی در ملک و نیستش ولی از روی زبونی و بزرگدار او را بزرگ داشتنی در آی فوق می بینیم که الله تعالی سریحاً می فرماید ولم یکن لحو ولی من الظلم و نیستش ولی از روی زبونی یعنی الله از روی زبونی خاری و پسی برای خودش ولی نمیگیره گیره حالا چگونه است که پیروان اهل تشیع مدعی اشهد اشحد و انعالی بری الله بنیز در سوره نساء آیه 165 الله سبحانه و تعالی میفرماید رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیم ترجمه آیه پیامبرانی که کرد و هشداردهنده بودند تا برای مردم بعد از فرستادن پیامبران در مقابل الله حجتی نماشد و الله توانا و حکیم است الله تعالی در بطن این آیه تأکید میکنه لالا یکون للناس علی الله حجه بعد از رسول تا برای مردم بعد از فرستادن پیامبران در مقابل الله حجتی نماشد با عنایت به اینکه مطابق نص سریح قرآن کریم در سوری نسا آیه 165 محمد رسول الله آخرین نبی و حجت الله روی زمین بوده و بعد از ایشان حجتیت شرعی و الهی به اتمام میرسه دوستان و فکر نمی کنن که عبارت اشحد ان انعالی حجت الله که هر روز در ازان و از منارهای مساجد تشیع به گوش میرسه تضاد و بنیادی با قرآن داشته باشه و مستاق عینی دروغ و افتراب بسن به الله رب العالمینه، نتیجه اینکه که روحانیت تشیع به واسطه جهل و ناآگاهی اکثریت مردم به قرآن با شگرد محرفانی سانسور و قیچی نمودن و نیز برخورد التقاطی خوش چینانه و شأن نزول تراشی میخواهد پیام آیات الهی را محندسی نموده تا از قبل تحریف قرآن مبین برای امامت انتصابی و موروسی مهدویت محوم و ولایت فقیه یا بهتر بگویم سلطنت فقیه خود ساخته خیش جواز شرعی و الهی بتراشد در آخر برنامه از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع امامت گوش کمال تشکر رو دارم پروردگارا بیداری حرکت و اراده را در پرتو فرامین روشنگرخیش بر همه مظلومان و ستم دیدگان انایت فرما یا رب چنین باد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات